فصل ل 13م شاکی فیلوس گفت خب برو از دستم شکایت کن مورچوس گفت همین کارو میکنم وکیل زبردستش گفت پاتو بذار روش فیلوس هم گذاشت افسانهای ای قدیمی یونانی درباره فلسفه ی حقوق یکی از دستاورت های عرضشمند دموکراتیک حق دادخواهی در محاکم قضاییه این حق بر این عقیده استواره که یک آدم معمولی با کسی که پول و قدرت و مقام داره در برابر قانون و قضا مساویه فقط یه مشکل در این میان وجود داره بیشعورها شکسپیر نوشته است قانون احمق است صرف نظر از اینکه این عقیده درسته یا نه، واقعیت قمنگیز اینه که نظام قضایی ما به شدت بیش بیشعورها رو داره و حتی به با اونا باج هم میده. در امریکا هر بیش میتونه از سر مرد آزاری آزاری دادخواستی علیه هر کسی که اراده کنه راه بیاندازه و او رو مجبور کنه که برای دفاع از خودش مبلغ هنگفتی هزینه کنه. سو نیت و خیال بافی جای شواهد و مدارک محکمه پسند رو گرفته و بنابراین دادگاه ها تبدیل به میدان بازی دلچسب بیشعور شده. سریترین راه برای شکست خوردن در مرافعی غذایی اینه که آدم معتقد باشه سیستم غذایی طرفه دومین راه گرفتن وکیل پاک و درست کاره. البته اگر چنین چیزی وجود خارجی داشته باشه. زیرا فقط بیشعورها از پس بیشعورهای دیگه برمیان و این مسئله ربط چندانی به ادالت نداره. به همین دلیل هم است که بیشعورها زیاد در بند ادالت نیستن. اگر بودن هیچ وقت نباید سر در دادگاه پیدا میشد. اونا فقط به دنبال دستاویزی برای آزار و عذیت دشمنانشون، همسایگانشون، همکارانشون، رفقاشون و کارمندان فلک زده ی دوربرشونن. و البته چه دستاویزی بهتر از قانون؟ توهین و افترا علیه آبروی افراد خلاف قانونه. پس فقط یک راه برای بیشعوری که میخواد به شما تهمت بزنه باقی میمونه. و اونم اینکه دادخواستی علیهتون تنظیم کنه و توی اون هر تهمت و ناسزایی که خوش داره بنویسه. فوق فوقش مشخص خواهد شد که موارد اتهامی او علیه شما بیاساس بوده و به حرفش در دادگاه به جایی نمیرسه. اما واقعیت اینه که او در پناه قانون به خواسته خودش رسیده. مرافعه حقوقی عشق بیشور کلن بیشعورا آشق عیبگیری و آبر و ریزی و مرافعه حقوقی راه بسیار مناسبی برای این منظوره که همه جامعه از عیبها و مشکلات واقعی یا خیالی که اونا مدعیش هستند آگاه بشه. در حجوم مدرن ما به سوی دادخواهی درباره هر خطای ممکنی بیشعورها شروع کردن به دادخواهی علیه پزشکان به خاطر سوء معالجه اگر ادالتی وجود می‌داشت، دادگاه‌ها باید به پزشکها هم اجازه می‌دادند، علیه بیمارانی که در روند درمانشان اخلال ایجاد می‌کنند شکایت کنند. شرکتها، به خاطر اخراج، اگر ادالتی وجود می‌داشت، دادگاه‌ها باید به شرکتها هم اجازه می‌دادند، علیه کارمندان اخراجیشون، به خاطر اینکه در قبال دریافت حقوقی که گرفتن کارشون رو درست انجام ندادهاند در واقع نوعی کلاهبرداری شکایت کنن معلم ها به خاطر ناکامیشون در تلاش برای کاستن از حماقتی که بیشورها یا فرزندان بیشورها به آن دچارند اگر ادالتی وجود می‌داشت، دادگاهها باید به معلم ها هم اجازه میدادند که علیه دانش آموزان تنبلشون به خاطر گرفتن وقت و آسیب زدن به اعابشون شکایت کنن والدینشون لابد به خاطر اینکه چرا در همان دوران جنینی اونا را سخت نکردن؟ بعضی وقتها بیشتر شاکی خیلی حقیر میشن. مثلا یه بار وکیلی از دست رئیس انجمن مسکونیشون به خاطر اینکه همسایه ها سگشون سگشون رو نگرفته بودن که جلوی خانه یا او کسافت کاری نکنه شکایت کرده بود. گویا فرشته ی ادالت به خواب رفته و نمی بینه که بیشترها شورش شورشو در میارن. در سایر مواقع شکایت قضایی نشان دهنده نهایت نفرت بیشور هاست این امر به ویژه در موارد تقاضای طلاق و درخواست بچه ها روشنه ظاهرا در های خانوادگی بی ها هیچ حد و مرزی برای خود قائل نیستند و حاضرا دست به هر کاری بزنند تا به خواسته خودشون برسن او دادگاه با پادرمیانی این بی ها را کنترل خواهد کرد قطعا خیر این حق آدمای کوچک است که به اندازه بیشعور بزرگ از نفهمی سهم داشته باشند و سیستم قضایی هم برای برقراری ادالت و سهمدهی برابر به وجود آمده است در هنگام سر سرکار داشتن با مسائل حقوقی و قضایی حتما باید این را در نظر داشت که به طور کلی وکلا به شدت در معرض بیشعوری قرار دارند پس مسلحت ایجاب میکنه که هرگز به وکلا اعتماد نکنید. اگر به حرف وکیلتان گوش کنید و دقیقاً به توصیه های او عمل کنید، اما شکست بخورید، او همه چیز را انکار خواهد کرد و هیچ مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت. هیچ وقت هم به انصاف وکیل طرف مقابلتان اعتماد نکنید. به وکیلها برای انصاف پول نمی دهند، به آنها پول می دهند تا از موکلشان با نابود کردن طرف دعوای او محافظت کنند البته بیشعور شاکین نیازی ندارد که برای رسیدن به هدف پلیدش همیشه در دادگاهات جولان بدهد بسیاری از قوانین و مقررات مورد نظر او را مأموران اجرایات شهرداری و امثال اون به همون خوبی پیاده میکنند. مثلا آدم بیشعور میتونه با شکایتی درست و حسابی همسایش رو مجبور کنه در پارکینگش رو که بیست سال پیش ساخته شده ده متر عقبتر ببره یا پنجره ای رو که پار سال گذاشته بود مسدود کنه. این اواخر بیشعورهاگ اکتیویست کشف کردن که قانون میتونه ای بسیار ارزشمند باشه. اهالی محلی با حرکت اعتراض آمیز خود علیه ساخت آزادراهی که ساخته آزاد که تا نیمه ساخته شده میتونن بهرهبرداری از اون رو پانزده تا بیست سال به تأخیر بیاندازن. تأخیری که هزینهش از جیب مالیات دهندگان پرداخت میشه و دودش به چشم همه کسایی میره که به اون آزادراه نیاز دارن. بیشعورهاگ شاکی هرگز راضی نمیشند. به نظر بیش شاکی هرگز نه آسمان به اندازه یه کافی آبی است و نه آب مرتوب و همیشه برای چیزایی که به نظر او مشکل دارند یکی مسئول و مقصر هست حتی شما دوست عزیز.